داستان بوز، خر و شغال فروش داستان زیبایی که میشنوین از اسمایل رقایی از گرگانه یکی بود، یکی نبود بابا سفتر با زنش ننسنم توی دهی زندگی میکردند اونا بعد از ده سال صاحب یه پسر شدن سفتر، ار روز صبح با الاقش به مزرعه میرفت و غروب به خونه برمیگشت سفتر خیلی دوست داشت پسرش توی مکتبخونه درس بخونه ولی پسر بعد از مدتی بهونه آورد و دیگه به مکتبخونه نرفت یه روز سفتر به پسرش گفت پسرم تا کی میخوای با بچه ها توی کوچه و پس کوچه پرسه بزنی حالا دیگه وقت اون شده که به فکر کار و زندگی باشی پسر رو به پدر کرد و گفت پس میخوام زندگی تشکیل بدم سفتر خندید و گفت اول برو کار پیدا کن بعد تشکیل زندگی بده اما از اونجا که پسر آماده خورده بود و راحت گشته بود تنها چیزی که براش مهم نبود کار بود روزا گذشت و پسر نق زد و بهونه های مختلف گرفت و تو گوش مادرش دائم خوند که میخواد ازدواج کنه. مادرش هم که از اون طرف میکرد. صفتر رو مجبور کرد تا به حرفش گوش بده. صفتر به پسرش گفت پسرم پس گاو رو فردا وردا رو ببر بازار بفروش تا با پول اون وسایل عروسی تو فراهم کنیم. فردای اون روز پسر گاو رو به بازار برد گاو خیلی درشت اندام بود چشم دلالا و مشتری‌ها رو خیره کرده بود بلافاصله دلالا پسر رو دوره کردن و دیدن که چه جوون خامی هم هست یکی گفت از خشکسالی آوردیش اون یکی گفت وقت گوسالگی شیرسوز شده سرانجام یکی با صدای بلند گفت آی پسر بزغالت چند پسر دوروبرش رو نگاه کرد و بزقاله ای ندید خریدار در حالی که تصبیه زرد رنگ و دونه درشتش رو تو دستش میچرخوند به پسر اشاره کرد و گفت با تو هم بزقالت رو چند میفروشی پسر مونده بود چی بگه؟ خریدار ادامه داد نرخش رو بگو یا سر صبحی مزاحم کسب و کارمون نشو. پسر حسابی در صبحاش رو گم کرد. بلا فاصله گفت ش... شما شما بگید چند میخرید؟ مشتری گفت بزغاله که قیمت نداره. حالا چون تو جوان خوبی هستی چند درهمی بهت میدم. پسر قبول کرد. گاو رو تحویل داد و چند درهمی گرفت و با خوشحالی بازار رو ترک کرد و طرف خونه رفت دلالا هم که گاب رو بزخر کرده بودن با خوشحالی از بازار بیرون رفتن غروب که صفتر از سر زمین برگشت پسرش رو خوشحال دید و پرسید پسرم گاب رو فروختی؟ پسر جواب داد بابا جو منظورت بزغاله است؟ پدر بلا فاصله فهمید که دلالا پسرش رو گول زدن گفت آره پسرم پسر گفت آره فروختم. صفتر چون میدونست فرزندش راحت گول میخوره خم به ابرو نیورد و لب باز نکرد. به جای این کارا نقشه کشید و تصمیم گرفت فردا درس خوبی به دلالا بده. تعدادی سکه طلا توی کیسه گذاشت و زیر پالان علاق جاسازی کرد و منتظر فردا شد. صبح روز بعد با پسرش راهی بازار شد و پیشاپیش به پسرش گفت که در مورد کیسه طلا حرفی نزنه و فقط دلال بزخر رو نشون بده وقتی به بازار رسیدند پسر از دور دلال رو شناخت و به پدرش نشون داد نزدیک رفتند و با دلالا سلام و علیک و احوال پرسی کردند تو همین لحظه سفتر با زیرکی سیخی به کیسه جاسازی شده زیر پالونه اولاغ زد و سکهای روی زمین افتاد. وقتی چشم دلالا به سکه افتاد از تعجب دهنشون باز موند. سفتر که تعجب اونا رو دیده بود گفت تعجب نکنید الاق من شگفت انگیزه من هر وقت که پول کم میارم یه سیخی بهش میزنم اون یه تکونی به بدنش میده و سکهای میفته زمین. اما در عوض خورد و خوراکش پرهزینه هزینه است. دلالا تمک کردن و گفتند باید به هر قیمتی شده این الاغ را از چنگش در بیاریم. صفتر باز گفت من آدم کم درآمدی هستم. اگر این الاغ نباشه روزگارم و حسرت ها میشه. خلاصه دلالا پذیرفتند. برابر خورجین الاغ به صفتر پول بدن اونم قبول کرد و روش نگهداری الاغ رو به اونا یاد داد و گفت این الاق باید توی اتاق باشه که یه فرش زیبا و قیمتی هم زیر پاش باشه قضاش نخود بریونیه و یه ظرف خیلی بزرگم آب شور باید جلوش بذارید تا چهار روزم نباید کسی در اتاق رو باز کنه فقط یه زنگوله جلوی در اتاقش باید به صدا در بیاد. بعد از چهار روز وارد اتاق بشید. اون وقت الاغ شروع به ارعر میکنه. بعد از اون با هر سیخی که به الاغ بزنید یه سکه طلا از الاغ پایین میفته. دلالا با خوشحالی پول زیادی به صفتر دادن و الاق رو بردن. صفترم با پسرش به خونه رفت. سفتر موضوع رو به زنش گفت و پولا رو به اون داد و گفت این پولا رو توی صندوق بذار چون مطمئنم بعد سه چهار روز سر و کله دلالا پیدا میشه دلالا الاق رو به خونه بردند مو به مو دستور سفتر رو اجرا کردند اتاقی با فرش زیبا و قیمتی محیا کردن و الاق رو با نخود بریون شده و اتاق بردند الاق از فرد گروس نخود و خورد و تشنش شد. وقتی آب شور رو هم خورد از سنگینی روی زمین افتاد. دلالا بعد از چهار روز زنگوله رو به صدا در آوردن و وارد اتاق شدند. دیدن الاق پاش سیخ شده سمت هوا. عصبانی شدن و سراسیمه به خونه سفتر رفتن. سفتر تو این فاصله یه نقشه دیگه کشید. به جنگل رفت و دوتا شغال گرفت یکی رو به خونه برد و دیگری رو توی مزرعه بست به زنش هم سفارش کرد که وقتی دلالا اون اومدن برای نهار برای بریون بپزه دلالا با داد و فریاد به خونه سفتر رسیدند و گفتن ای فریبکار کجایی؟ همسر سفتر گفت سفتر سر زمینه سفتر اون روز پسرش رو با خودش به مزرعه برده بود تا دید دلالا دارن میان به پسرش گفت تو اصلا حرفی نزن و فقط تماشا کن. دلالا عصبانی اومدن سمتش رو گفتن ای مردک حق باز. سفتر حرفاشون رو قطع کرد و گفت سلام دوستای خوبم خوب شد اومدید. هرچند من میخواستم دو روزه پیش شما رو ببینم و یه مسئلهی رو براتون بگم. ولی بله نشونه ای از شما نداشتم جونم که شما باشین اون روزی که اولاغ را از من خریدید و بردید نیمه شب اولاغ به خوابم اومد و گفت سفتر وقتی پیش تو بودم احترام و عزتی داشتم ولی از وقتی دست دلالو افتادم مراعات حال منو رو بعد با زیرکی از اونا پرسید بگید ببینم شما چه وقت زنگولر رو به صدا درآوردید؟ اونا گفتند، روز چهارم. روم سفتر آخ و واخ کنان به کاسه زاناش زد و گفت واخ واخ دیدید به اون دهن بسته چه ظلمی کردید؟ شما باید هر روز زنگوله رو به صدا در می آوردید به شما گفته بودم وقتی الاق بخواد سکه بندازه باید با صدای زنگ به رخص در بیاد ولی شما این کار نکردید و الاغ با خودش فکر کرد شما براش احترام قائل نیستید و به خاطر این بی احترامی شما دق کرد و مرد سفتر چنان زاری کرد که دلالو هم ناراحت شدن و وارد کلبه شدند. دیدن توی کلبه یه شغال بسته شده و بیقراره با تعجب گفتند شغال اینجا چی کار میکنه؟ سفتر گفت پادای خونمه بعد رو به شغال کرد و گفت شغال با وفای من؟ اول برو بازار خرید کن بعد برو منزل به سنم بگو امروز دوتا مهمون عزیز داریم غذای خوبی تحییه کنه اصلا از قول من به اون بگو برای بریون شده درست کنه شغال رو بیرون کلبه برد و تناب را از گردنش باز کرد و شغال بلافاصله فاصله از کلبه دور شد بعد از ساعتی سفتر با دلالا راهی شد و به خونه رسیدند دیدن شغال جلوی سکوی خونه سفتر بسته شده دلالا با حیرت به هم نگاه کردن و حرفی نزدند سر سفره نشستند دیدن غذا بره بریون شده است باورشون شد که این شغال هم با ارزشه توی فرصتی با هم مشورت کردند که هر طور شده این شغال را از دست سفتر بیرون بیارن. بعد رو به سفتر کردن و گفتن الاقت که به ما وفا نکرد پس این شغال رو به ما بده تا داغ اولاغ رو فراموش کنیم سفتر گفت چه کنم حالا هواتون رو درک میکنم باشه ولی قول بدید که از این شغال خوب نگهداری کنید میدونید که شغال زیاده ولی ارزش این شغال به وفاداری و درست شه. حالا شماها قول دیگه هم به من و هم به خودتون بدید که از این به بعد درست کاری و وفاداری پیشه کنید. منم به ناچار از اینجا کوچ می کنم به یه سرزمین دیگه میرم تا شاید بتونم غم علاق و دوری شغالم رو فراموش کنم. دلالا با خوشحالی شغال رو گرفتند و رفتن. صفتر هم با خونوادش از اون آبادی رفت تا از شر بزخرها راحت بشه. دلالا همینطوری که داشتن میرفتن بر سر نگهداری شغال حرفشون شد و تصمیم گرفتن یک روز در میون هر کدوم شغال رو پیش خودشون نگه دارن قرار گذاشتن تناب را از گردن شغال باز کنن شغال دنبال هر کدوم از اونا رفت اول اون از شغال نگهداری کنه باز کردن تناب همونو فرار کردن شغال به سمت جنگل همون دلالا از اون به بعد تصمیم گرفتن که سر هیچ بنده خدایی رو کلاه نذارن